بزاد افسان نظر می رسکوگ جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد سلام و درود بر شما همراهان رادیو جمان در گذشته افسانهها ها وقت ها سینه به سینه از نسلی به نسل دیگه می رسید و گاهی هم از زبان راویان و داستان سرایان دورگرد یا ساربانانی که کاروان خودشونو از دورترین شهرهای اسارامیز شرق به غرب میبردند شنیده میشد. و به این ترتیب بود که افسانه‌ها و قصه های اقوام مختلف سفر دور و دراز خودشون را نه فقط در قرون و اعثار بلکه در گستره زمین انجام می‌دادند افسانه ای را از سرزمین عزیز ما ایران براتون نقل میکنم به نام افسانه کریم پادشاه بر گرفته از کتاب قصه‌های عامیانه ای مردم ایران به گرداوری منو چهره سریمی امیدواریم که از شنیدن این افثانی زیبای ایرانی لذت زفت در روزگاران خیلی خیلی دور خارکنی زندگی میکرد که به اون کریم خارکن میگفتن خارکن افثانه ما روزها به صحرا میرفت و خارها رو جمعآوری میکرد و به شهر میبرد و میفروخت و با پول اون زندگی بخور و نمیری رو میگذرند در همون شهری که خارکن افثانه ما زندگی میکرد پادشاهی حکومت میکرد که اتفاقاً اسم اونم کریم بود و مردم به اون کریم پادشاه میگفتن روزی از روزها کریم پادشاه و همراه همسرش و کلفت و نوکراش برای شکار به صحرا رفت و در اونجا چادر زد در اون موقع اونا خارکن افسانه ما مارو دیدن که با زحمت زیاد در حال جمع آوری خارهای صحرایی بود پادشاه با دیدن اون فریاد زد آهای پیرمرد خارکن بیا بیا و مقداری از اون خارهات رو به ما بده میخواییم یا آتیش حسابی روشن کنیم خارکن مقداری از خارهایی رو که جمع کرده بود به پادشاه داد و نوکرا فورا دست به کار روشن کردن آتیش شدن و در این میون پادشاه نگاهی به لباساگ پاره و مندرس خارکن انداخت و از اون پرسید خوب خارکن بگو ببینم اسمت چیه خارکن جواب داد قربان نوکر شما کریم خارکن پادشاه با شنیدن این حرف با عصبانیت گفت گفتی کریم؟ تو تو خارکن بینوا با این لباس های چطور جرأت کردی اسم منو که پادشاه این سرزمینم روی خودت بذاری ها؟ خارکن با ترس و لرز جواب داد قربان، من من که این اسم روی خودم نزاشتم پدر و مادرم وقتی من به دنیا اومدم این اسم رو... پادشاه کلام خارکن رو قطع کرد و رو به نوکرانش فریاد زد... فوراً پدر مادره بی اقل این مرد رو احضار کنین! خارکن لبخندی زد و گفت... قربان... پدر مادر من سالهاست که از دنیا رفتن پادشاه با عصبانیت گفت مرد چه بی انغل. پس از همین فردا باید اسمت رو عباس کنی و بعد از شدت عصبانیت مرد خارکن رو پادشاه هول داد کریم خارکن بیچاره افتاد روی خارا و دست و پاش زخمی شد پادشاه با خشم ادامه داد فورا نظری چشمان دور شو مرز ابله کریم خارکن بلند شد و راه افتاد رفت دورترها و <سيح> به جمع آوری خار و شد بله. خارکن از جلوی چشم پادشاه دور شد و به جمع کردن خارهای صحرایی مشغول شد در این موقع همسر پادشاه که زنی مهربون و با کمال بود و از رفتاری که شوهرش یعنی جناب پادشاه با مرد خارکن داشت ناراحت شده بود به پادشاه گفت یه پادشاه نباید با مردم سرزمینش اینجوری رفتار کنه درست نیست این عدالت نیست پادشاه با عصبانیت گفت پس این عدالته که یه خارکن بی چیزی که به نون شب محتاجه هم اسم پادشاه یه سرزمین باشه؟ ها؟ زن نگاهی به همسرش کرد و گفت روزگار خواسته که اسم تو کریم باشه کریم پادشاه باشی و این بیچاره هم کریم خارکن و اونی که اون بالاست اسمش وسا کریم باشه پادشاه با خشم و غضب نگاهی به زنش و گفت من پادشاه هم و پادشاه باید با دیگران فرق داشته باشه حتی در اسم زن پادشاه گفت این که نشد حرف اون خارکن بیچاره پادشاه فریاد زد خاموش تو لیاقت همسری پادشاه رو نداری خلاصه بحث پادشاه و همسرشون قد بالا گرفت که پادشاه با خشم به همسرش گفت من زنی رو که از یک خارکنه بیچیز چیز طرفتاری میکنه نمیخوام و بعد از زنش خواست که فورا از جلوی چشاش دور بشه و بره هر جایی که دلش میخواد و به نوکرانش دستور داد که چادر رو جمع کنن و به قصد برگردند. اونم بدون همسرش زن پادشاه بعد از رفتن پادشاه تک و تنها مون توی صحرا. در این موقع مرد خارکن که حالا دیگه کارش تموم شده بود، خاراش رو جمع کرد و راه افتاد که بره خونه. زن پادشاه رفت به طرف خارکن و گفت: ای پدرجان من از رفتاری که همسرم با تو داشته خیلی ناراحت شدم. و با اون جربه بس کردم." اونم گفت که من زنی رو که از یه خارکن طرفتاری کنه نمیخوام و منو تنها گذاشت و رفت. حالا من تنها و بیکسم. بیا با هم عهد خواهر برادری ببندیم و منو با خودت به خونت ببر. خارکن گفت. اینجور که معلومه تو زن با کمال و خدا هستی. ولی من... زندگی خودم رو به سختی میگذرونم و فقط یه خونه یه کاهگلی کوچیک دارم و این برای تو که سالها زن پادشاه بودی و در ناز و نعمت زندگی کردی کار سختیه ولی زن گفت نه سخت نیست من زندگی در کنار برادری مثل تو که با زحمت رز و روزی خودش رو به دست میاره به زندگی توی قصری که متعلق به پادشاهی مقرور و خودپرست ترجیح میدم. و بعد اضافه کرد نگران گذران زندگیم نباش من این طلاهایی رو که به گردن و دستامه میفروشم و زندگیمون رو میگذرونیم خارکن گفت باشه پس خواهرجان را بیفت که هوا داره تاریک میشه و موندن توی صحرا خطر بره. خارکن و زن پادشاه به راه افتادن و رفتن به طرف خونشون چند روزی گذشت زن گفت ای برادر از این به بعد بهتر خاراتو اینجا جمع کنی و یه دفعه اونا رو ببری بفروشی تا به یه پول درست حسابی برسی خارکن قبول کرد و هر روز به صحرا می رفت و مقداری خار می آورد و یه گوشه انبار می کرد. ای رو که خارکن افسانه ما جمع کرده بود هر روز بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه یه روز اتفاقی افتاد چه اتفاقی؟ الان براتون میگم. بله یه روز که قرار بود خارکن خارهای انبار شده رو برای فروش به بازار ببره خارها یه دفعه آتیش گرفت و سوخت خارکن گفت ای داد و بیداد دیدی چه خاکی به سرمون شد تمام سرمایمون به هدر رفت حالا چی کار کنیم حال زن گفت خدا بزرگ برادر خصه نخور از فردا منم همراهت به صحرا میام و با هم خار جمع میکنیم و بعد رفت تا خاکستر خارها رو جمع کنه زن همینجور که مشغول جمع کردن خاکسترهای خارها بود دید ای شانس و ای اقبال زیر خاکستر خارها هفت خم اونم پر از تلاو و اشرفی دیده میشه، زن با خوشحالی فریاد زد برادر برادر بیا که ثروتمند شدیم و خارکن با عجله اومد و وقتی چشمش به کوزه هاگ تلاو و اشرفی افتاد با خوشحالی گفت واقعا خدا بزرگه و بعد هر دو خدای بزرگ رو به خاطر این لطف و توجه شکر کردن و با خوشحالی برای ادامه زندگیشون برنامه کرد بله با پیدا شدن هفت کوزه تلاب و اشرفی زندگی خارکن و خواهرش از این رو به اون رو شد اونها اده عمله و بنا رو خبر کردن و از اونا خواستن تا قصر باشکوهی مثل قصر کریم پادشاه براشون بسازن. زن سفارش داد تا برای برادرش یعنی همون خارکن افسانه ما تختی ساختن و قشون زیادی فراهم کردن. خلاصه زندگی اونها رنگ ای به خودش گرفت و مردم دست دست برای تماشای قصر می اومدن. اونا به نیازمندان هم کمک های زیادی کردن و کم کم خارکن افثانه ما در بین مردم به کریم پادشاه مهربان معروف شد. کریم خارکن سابق که حالا به کریم پادشاه مهربان معروف شده بود سفارش داد ماهرترین نقاش شهر از خواهرش که زمانی زن پادشاه بوده نقاشی کنه و بعد اونو بالای در غصد چسبون. روزها گذشت تا اینکه یه روزی کریم خارکن سابق به کریم پادشاه مغرور گفت یا به اون باج و خراج بده یا دست دوستی به اون بده یا اینکه آماده جنگ باش حالا بشنوید زن پادشاه که الان دیگه همه مردم اونو به عنوان خواهر خارکن سابق میشناختن اون به خارکن گفته بود اگه شوهرم اومد تو به پیشازش برو و به اون احترام بذار اگه دیدی از زنش که من باشم تعریف کرد و از رفتاری که با اون دست پشیمونه بگو من حاضرم خواهرم رو به عقد تو در بیارم در عوض تو هم خواهرت رو به من بده کریم خارکن حرف خواهرش رو پذیرفت و منتظر اومدن کریم پادشاه موند. بالاخره چند روز بعد کریم پادشاه بعد از سبک سنگین کردن اوضا تصمیم گرفت به دیدن کریم خارکن بره چون به این نتیجه رسیده بود که نه قدرت جنگ با گشون کریم خارکن رو داره و نه توان پرداخت باج و خراجش رو بنابراین با گشونش به طرف قصر باشکوه کریم خارکن برافتند بله کریم پادشاه با قشونش به طرف قصر باشکوه کریم خارکن به راه افتاد نزدیکی های قصر که رسیدن کریم خارکن همونطوری که زنگ گفته بود به پیشواز کریم پادشاه رفت و اونو به داخل قصر راهنمایی کرد کریم پادشاه به محض رسیدن به در قصر چشمش به عکس نقاشی شده یه دم در قصر افتاد و با دیدن اون اش در چشاش شم شد و از اعماق قلبش آه کشید. کریم کارکن که معنی آه کریم پادشاه رو میدونست چیزی نگفت و اونو به داخل تالار باشکوه قصرش راهنمایی کرد. در عرض چند دقیقه انواع غذاهای مطبوع و نوشیدنی های گوارا روی میز چیده شد. اما اما کریم پادشاه میلی به غذا و نوشیدن نداشت و هنوز در فکر اکس نقاشی شده ای بود که بر سردر قصر بود. کریم خارکن فرصت رو مناسب دید و از کریم پادشاه پرسید خیلی دلم میخواد بدونم که چرا وقتی وارد می میشدی آه کشیدی. کریم پادشاه دوباره آهی کشید و گفت آه این عکس خیلی شبیه زنم من با زنم بدرفتاری کردم و اونو به خاطر حرف حقی که زده بود از خودم دور کردم و به اون گفتم لیاقت همسری منو نداره حالا حالا میفهمم که این من بودم که لیاقت همسری اونو نداشتم اون زن مهربون و با کمالاتی بود کریم خارکن پرسید خب الان سنت کجاست؟ کریم پادشاه جواب داد من اونو توی بیابون رها کردم و رفتم الانم نمیدونم چه بلایی به سرش اومده شاید تو یه وحشی شده باشه من خیلی اشتباه کردم که اونو تنها گذاشتم خیلی اشتباه کردم و بعد با چشمای پر اشک ماجرای اون روز رو برای کریم خارکن تعریف کرد و پرسید اون اکسیکیت باید برات خیلی عزیز باشه که عکسش رو به صدرال قصر تاویزون کردی کریم خارکن جواب داد درسته اون تنها خواهر من توی دنیاست و برام خیلی هم عزیزه کریم پادشا به فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه به کریم خارکن گفت خواهرت منو بیاد زن سابقم میندزه من من همین حالا از خواهرت خواستگاری میکنم تو حاضری خواهرت رو به من بدی کریم خارکن که منتظر همین حرف بود فورا گفت البته که حاضرم فقط فقط یه شرط داره کریم پادشاه گفت چه شرطی هر شرطی باشه قبول میکنم کریم خارکن گفت شرط من اینه که تو هم خواهرت رو به عقد من در بیاری موافقی؟ کریم پادشاه با خوشحالی گفت البته که موافقم چه کسی است و بهتر و هر دو از خوشحالی خندیدن و به خوردن غذاهای متنوع مشغول شد بعد از خوردن غذا زن وارد تالار غص شد کریم پادشاه با دیدن اون از تعجب خوش کش زد کریم خارکن گفت این خواهر منه باید اونو بشناسی. اون زن سابق توه منم همون خارکنی هستم که کریم پادشاه با ناباوری گفت این این خیر ممکنه خدایا چی میبینم زن گفت آه بعد از اینکه که تو منو توی بیابون رها کردی منو کریم خارکن با هم عهد خواهر برادری بستیم زن بعد اضافه کرد میبینی همون خارکن بی و ندار به خاست خدا به این دم و دستگاه و قشون رسید که با تو برابری کنه کریم پادشا که سخت احساس شرمندگی میکرد با خجالت گفت خداوند از سر تقصیداتم بگذره من در حق تو و برادرت خیلی بد کردم و حاضرم هر کاری که بگید انجام بدم خلاصه کریم با خوشحالی زنش رو به قصر خودش برد و فردای اون روز هم جشن عروسی کریم خارکن و خواهر کریم پادشا با شکوه خاصی برگزار شد و تمام شهر غرق شادی و شد افثانه ایرانی کریم پادشاه رو براتون نقل کردن برگرفته از کتاب قصه آمیانه به گردآوری منوچهر سلیمی درس که از شنیدن و خوندن قصه ها و افسانهها گرفته میشه بسیار ارزشمند و مفیده گنجینه افسانههای کشورمون رو پاس بداریم و از اونها درس و اندرز بدیم که کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار اکبر میکاین تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا سلامی دیگر بدر